چه بلوار قشنگی همه جای اصفهان بسیار زیباست این خیابان بسیار قدیمی است به دستور شاه عباس صفوی چهارصد سال پیش اینجا را ساختند در آن زمان هم این خیابان بلوار بوده است بله یک جوی آب وسط خیابان بوده که آب آن به زاینده رود می‌ریخته است چرا به این خیابان چار باغ می می‌گویند چون در زمان قدیم چهار باغ بزرگ در اینجا وجود داشت است الان هم باغ ها خراب شده است؟ بله فقط باغ هشت بهشت هشت است. باغ هشت بهشت هشت اینجاست در واقع اینجا یک کاخ بزرگ است بله ساختمان این باغ دو طبقه دارد و اتاقهای آن خیلی مجلل هستند آیا این اتاقها تزینات مخصوص دارند؟ بله این کاخ و اغلب ساختمان شهر اصفهان تزینات هنری دارند. این حوز و درختان باغ نشان می دهد که اینجا قدیمی است.